کتاب دختر بلفی، پسر آتشی و چهل و شش افثانه دیگر افسانه‌های شیرین دنیا نویسنده اندرو لنگ مترجم سارا قدیانی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان. داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده داستان زیباتر از پری یکی بود یکی نبود روزی روزگاری پادشاهی بود که سالها از ازدواجش گذشته بود اما بچه دار نشده بود بالاخره خداوند دختری بهش داد که خیلی زیبا بود و به نظر پادشاه هیچ اسمی جز زیباتر از پری مناسبش نبود این پادشاه خوشغلب که تا به حال نشنیده بود یه اسم ممکنه باعث بشه پریها از یه بچه متنفر بشن و به حسودی کنند اما این اتفاق افتاد به محظ اینکه پریه ها این اسم آمیز و شنیدن تصمیم گرفتند صاحب اونو تلسم کنند و آزارش بدن یا اینکه نگذارند چشم هیچ مردی بهش بیفته پیرترین عضو این گروه تصمیم گرفت نقشه را اجرا کنه اسم این پری لاگری بود او خیلی پیر بود و فقط یه چشم و یه دندون براش باقی مونده بود تازه همینا رو هم هر شب داخل مایه نیروزا میذاشت تا از بین نره او به قدری کینه توز بود که با خوشحالی قبول کرد برای استفاده از هیلاهو و نقشه‌های بیررحمانه پریها همه وقتشو صرف کنه لاگری با وجود تجربه زیاد و ذات پلید خودش بازم برای از بین بردن زیباتر از پری کمی دچار مشکل شد بچه بیچاره که فقط هفت سال داشت وقتی خودشو اسیر اون موجود زشت میبینه نزدیک بود از ترس بمیره. اما وقتی که بعد از یه سفر یه ساعتی زیرزمینی به قصری زیبا با باغهای پرگل رسیدند کمی خیالش راحت شد و خوشحالش وقتی بیشتر شد که دید گربه و سگش هم دنبالش اومدن. پری پیر اونو به یه اتاق زیبایی برد و گفت این مال توست. و در زم خیلی سفارش کرد که مواظب باشه آتیش درون بخاری هم خاموش نشه بعد دو بطری شیشه به شاهزاده خانم داد تا از اونها مراقبت کنه و برای اینکه کسی از دستوراتش سرپیچی نکنه تهدیدای ترسناکی هم به زبون آورد او بعد از این حرفا ناپدید شد و دختر کوچولو را آزاد گذاشت تا قصر و باغ رو بگرده و دختره خیلی خوشحال بود که فقط دو وظیفه به ظاهر ساده داره. سالها گذشت و در این مدت شاهزاده خانم عادت کرده بود تنها زندگی کنه و دستورات پری را اجرا کنه. کم کم همه چیز را در باره پدرش فراموش کرد. یه روز وقتی از کنار یه فواره رد می شد. چشمش به رنگین کمونی افتاد که از تابیدن ااشای خورشید به آب درست شده بود. او مشغول تماشای این منظره بود که ناگهان با تعجب شنید کسی اونو صدا میزنه. به نظر می اومد اون صدا از وسط پرتوای خورشید میاد. اون صدای دلنشین مربوط به مردی بود که از لحن کلام و کلمات قشنگی که استفاده میکرد معلوم بود باید خیلی جذاب و بابغار باشه. اما همه اینها فقط خیالات بود چون هیچ کس اون اطراف دیده نمیشد رنگین کمون زیبا به زیباتر از پری گفت که اون پسر جوان پسر جوان یه پادشاه است و چون پریلاگری از پدر و مادر او کینه داشت اونو به این شکل تبدیل کرد و حالا سال هاست که اینجا زندونیه و سالای اول خیلی به او سخت میگذشت اما از وقتی که زیباتر از پری رو دیده به او علاقه من شد و دیگه غصه نمیخوره آه نمیکشه. او برای شاهزاده خانم حرفهای قشنگ و محبت ها میزد اما دختر که عادت نداشت چنین هم صحبتی داشته باشه نمیتونستپاش هم دردی کنه. شاهزاده، فقط زمانی میتونست حرف بزنه که به شکل رنگین کمون درآمده باشه. به همین خاطر حتما باید آفتاب بهش میتابید تا از، اون رنگ‌های زیبا به وجود بیاد و بتونه صحبت کنه. زیباتر از پری هیچ فرصتی را برای گفتگو با عاشقش از دست نمیداد. و اونها ساعت‌ها با هم حرف میزدند. یه روز که صحبت میکردند و گذر زمان را حس نمی‌کردند، شاهزاده خانم یادش رفت به آتیش سر بزنه و بخاری خاموش شد. لاگری خیلی زود از ماجرا خبردار شد و خیلی خوشحال شد که بالاخره فرصتی دست داده تا نفرتشو به زندونی زیباش نشون بده. او به زیباتر از پری دستور داد فردا قبل از طولوی خورشید سراغ لاکرینوس بره و ازش بخواد آتیش رو دوباره روشن کنه. و اما لاکرینوس یه حیولای بیرحم بود که هر کس میدید از بیمی برد مخصوصا عاشق خوردن دختران جوان بود. شاهزاده خانم از این دستور اطاعت کرد و بعد از خداحافظی با شاهزاده رنگین کمون به طرف خونه لاکرینوس برا افتاد و مطمئن بود هرگز باز نخواهد گشت. وقتی از کنار یه درخت رد میشد شد بهش گفت یه سنگ درخشان از کنار فواره و با خودش ببره چون به اون احتیاج پیدا خواهد کرد. دختر پیشنهاد پرنده رو اجرا کرد و کمی بعد به خانه لاکرینوس رسید. خوشبختانه فقط همسرش تو خونه بود و اون زن از شاهزاده خانم زیبا و شیرین زبونیش خیلی خوشش اومد. و وقتی که یه سنگ درخشان هم هدیه گرفت محبتش از قبل بیشتر به دلش نشست. او فوری به زیباتر از پری آتش روشنی داد و در عوض سنگ هدیه او هم، سنگ دیگه ای به شاهزاده خانم داد و گفت شاید روزی به دردش بخوره بعد بدون این که آسیبی بهش بزنه دختر رو راهی خونه کرد لاگری از نتیجه این سفر کوتاه شگفت زده و ناراحت شد و زیباتر از پری مشتاقانه منتظر موند تا سراغ شاهزاده رنگی کمون بره و ماجرا رو براش تعریف کنه اما فهمید یه پری که ازش مراقبت میکنه همه چیزو براش توضیح داده. خطری که از بیخ گوش شاهزاده خانم گذشت، پسر را به این فکر انداخت که به جای فواره باغ، جای مناسبتری رو برای صحبت کردن پیدا کنند و زیباتر از پری خیلی زود راه حل را پیدا کرد و هر روز اون رو اجرا میکرد. او هر روز صبح تشت پر آب بزرگی رو لبه پنجره اتاقش میذاشت و به محض اینکه نور آفتابش میتابید، رنگین کمونی به زیبایی رنگین کمون فواره روی اون تشکیل میشد. به این ترتیب اونها میتونستند ساعت زیر نور خورشید با هم حرف بزنند و در طی اون مدت حواسشون هم به آتیش و هم به دو بطری که پری پیر، شبها چشم و دندونش رو در ون میزاشت باشه یه روز شاهزاده رنگین کمون خیلی قصهدار بود و چون شنیده بود قراره که اونو از اون محل که اونقدر دوستش داره به جای دیگهای تبعیدش کنن اما نمیدونست به کجا دو جوون بیچاره غمگین شدن و تا وقتی آخرین پرتوهای خورشید به زمین میتابید از هم جدا نشدند و بعد از خداحافظی به امید دیدار فردا شب را صبح کردند اما افسوس روز بعد تاریک و ابری بود فقط چند لحظه ای نزدیک غروب نور خورشید از میون ابرات تابید زیباتر از پری مشتاقانه به طرف پنجره دوید اما به قدری عجله داشت که دستش به تشت خورد و همه آبی که شبانه داخل ظرف ریخته بود، به زمین ریخت. دیگه هیچ آبی اون نزدیکی بجز آب مایه داخل دو بطری نبود. این آخرین فرصت دیدار قبل از جدایی بود و او بدون لحظه تردید بطری ها رو شکست و محتویات اونها رو داخل تشت ریخت و رنگین کمون فوری ظاهر شد. ودای اونها خیلی غم انگیز بود. شاهزاده حرفهای پرسوز و گدازی زد و قول داد سعی خودشو بکنه تا زیباتر از پری عزیزش رو نجات بده و او خواهش کرد به محض اینکه هر دو آزاد شدن به ازدواج رضایت بده شاهزاده خانوم هم با اندوه قسم خورد که همسری جزو رو قبول نکنه و برای رسیدن به او حتی مرگ هم براش شیرین خواهد بود اونا وقت زیادی برای خداحافظی نداشتند. رنگی کمون ناپدید شد و شاهزاد خانم تصمیم گرفت قبل از اون که دیر بشه از خطر فرار کنه او فوری به راه افتاد و با خودش سگ و گربش و, و یک ترک مورد و سنگی که همسر لاگرینوس به او داده بود همراه برد وقتی لاگری فهمید زندونیش فرار کرده به سرعت دنبارش رفت. او وقتی به دختر بیچاره رسید که از شدت خستگی خوابش برده و سنگ برایش سایبانی درست کرده بود. سگ کوچولو که مواظب صاحبش بود به لاگری حمله کرد و چنان گازی از پاش گرفت که پیرزن به زمین افتاد و تنها دندونش هم شکست. قبل از اینکه درد شکستن دندون به او فرصت فکر کردن بده خانم پا به فرار گذاشت و از اونجا دور شد ترس باعث شده بود پاش نیرو بگیرند و مسافت زیادی رو دوید اما بالاخره خسته شد و به زمین افتاد به محض اینکه ترکه مرد با زمین تماس پیدا کرد ناگهان آلاچیق سبز و زیباهی ظاهر شد و دختر با خیال راحت در پناه اون به خواب رفت اما لاگری دست از تعقیب او بر نداشته بود و زیباتر از پری تازه به خواب رفته بود که او به اونجا رسید این بار دیگه پیرزن مطمئن بود که زندونیش رو گیر آورده اما گربه از روی آلاچیق اونو دید و به طرف صورت لاگری پرید و تنها چشمش رو هم کور کرد و با این کار شاهزاده خانم رو برای همیشه از آزارهای او نجات داد. شاید کسی فکر کنه که از اون به بعد همه چیز به خوبی پیش رفت، اما کمی بعد از اینکه لاگری پا به فرار گذاشت، گرسنگی و تشنگی شدیدی به سراغ دختر اومد. او فکر می کرد هر لحظه ممکنه بمیره. و با زحمت زیاد کشان کشان را به خونه کوچیک و سبز و سفیدی رسوند. صاحب خونه خانم زیبایی بود که لباس سفید و سبزی همرنگ خونه به تنگ کرده بود و به نظر می اومد تنهاست. او شاهزاده خانوم خسته را با آغوش باز پذیرفت و برای شام خوشمزه ای آماده کرد و بعد از یه خواب راحت و طولانی بهش گفت که مشکلات به تموم میشه و او به آرزوش میرسه. هنگام خداحافظی خانوم سبز و سفید گردویی به شاهزاده خانوم داد و گفت باید در یک وضعیت استراری اونا بشکنه. پس از یه سفر طولانی و خسته کننده زیباتر از پری به خونه دیگهی رسید و مثل دفعه قبل خانومی با مهربونی ازش پذیرایی کرد. او یک بار دیگه هدیهی با همون سفارش دریافت کرد. اما این بار صاحب خونه به جای گردو یه انار طلایی بهش داد. شاهزاده خانم غم زده به سفر خسته کنندش ادامه داد و بعد از پشت سرگذاشتن مشکلات و سختی های بسیار در سومین خونه که شبیه دو خونه دیگه بود استراحت کرد. از اون پذیرایی شد. این خونه ها متعلق به سه خواهر بود که به مهمانهای خودشون هدیه های محبت آمیز میدادند و اخلاق و رفتار و فکرشون هم مثل هم و خونه و لباس هاشون هم کاملا شبیه هم بود. اونها کارشون کمک به بیچارگان بود و هرچقدر که لاگری بدجنس و, و به دیگران بدی میکرد اونها مهربون و خیرخواه بودند. پری سوم مسافر خسته را دلداری داد و گفت که امیدش را از دست ناد و به او اطمینان داد که به خاطر تحمل سختی ها پاداش خواهد گرفت. بعد یه بطری شیشه‌ای معطر به او داد و گفت فقط در یه وضعیت استراری اونا باز کنه. زیباتر از پری از او تشکر کرد و با امیدواری به راه خودش ادامه داد و پس از مدتی جاده به جنگلی خوش آب و هوا رسید و دختر تقریبا هزار متر در میان درختها راه رفته بود که به قصر نقرهی عجیبی رسید که با زنجیرهای محکم نقرهی از چهار درخت آبیزان بود و وزش ملایم باد اون رو مثل گهوارهی تکون میداد. زیباتر از پری خیلی دلش میخواست وارد قصر بشه اما ساختمون قصر چند متری از زمین بالاتر بود و درزه هیچ در و پنجری در اون دیده نمیشد. شد. حس درونی بهش گفته بود که وقت استفاده از گردو فرا رسیده. او گردو را شکست و از داخل اون آدم کوچولویی بیرون اومد که به کمربندش زنجیر ظریفی آویزون بود و اون زنجیر یک کلید طلایی هم بحث بود. که کوچکترین سوزنی که تا به حال دیده شده هم کوچکتر بود. شاهزاده خانم از یکی از زنجیرها بالا رفت. او آدم کوچولو را هم با خودش برد. با اینکه خیلی کوچیک بود تونست با کلید طلایش یه در مخفی رو برای دختر باز کنه. شاهزاده خانم وارد یه اتاق باشکو شد که به نظر می اومد تنها اتاق قصره. و نور ستاره های که روی سقف بودن اون رو روشن میکرد. در وسط این اتاق تختی قرار داشت که با یه رو تختی به رنگ رنگ این کمون پوشیده شده بود. تخت از چند تناب طلایی آویزون بود و با تکونهای قصر تخت هم تکون میخورد و هر کس که روی اون دراز میکشید به خواب شیرینی فرو میرفت. روی این تخت رویایی شاهزاده رنگین کمون با چهره زیبا به خواب رفته بود او پس از خداحافظی به اونجا منتقل شده بود زیباتر از پری که اولین بار بود اونو به شکل واقعیش میدید نمی نمیکرد به صورتش خیره بشه مبادا چهره شاهزاده با صدایی که دلش رو برده بود تناسب نداشته باشه اما در عین حال نمیتونست بعد از اون همه دوری خونسرد بیست و هیچ کاری نکنه. بنابراین شروع کرد به تعریف کردن ماجره و اتفاقاتی که براش افتاده بود و این داستان را بارها با صدای بلند تکرار کرد. اما شاهزاده بیدار نشد و هیچ واکنشی نشون نداد. دختر ناچار به سراغ انار طلایی رفت. وقتی اونو شکافت هر دانه انار تبدیل به یه ویولون شد. همه ویولون ها در هوا به پرواز در اومدند و شروع کردند به آهنگ زدن. شاهزاده هنوز کاملا بیدار نشده بود اما چشمهاش رو کمی باز کرد و همین کافی بود که معلوم بشه چه چهره زیبایی داره. شاهزاده خانم که دلش میخواست هرچه زودتر دیده بشه به سراغ هدیه سوم رفت. وقتی در بطری را باز کرد، پرنده کوچکی بیرون پرید، ویلونها ساکت کرد و بعد کنار گوش شاهزاد خانم نشست و داستان عشق دختر و سختی را که برای پیدا کردن او کشیده بود، تعریف کرد. او کمی هم به داستان آب و تاب داد و هنوز حرفش تمام نشده بود که پسر از روی تخت پرید و با خوشحالی، به پای شاهزاد خانوم افتاد. همان لحظه دیوارها عقب رفتند و یک تخت سلطنتی پوشیده از جواهر ظاهر شد. کم کم درباره با شکوهی شکل گرفت و همان موقع چند کالسکه سلطنتی به اونجا رسیدند که خانومهای شیک پوشی سوار اونها بودند. در اولین و مجلل ترین کالسکه مادر شاهزاده رنگین کمون نشسته بود او پسرش پسرشو به گرمی در آغوش گرفت و کمی بعد بهش خبر داد که پدرش چند سال پیش فوت کرده و بالاخره بعد از مدتها خشم پریها از بین رفته و حالا او میتونه به سلطنت برسه و نزد کسانی که دوستش دارند برگرده درباریان به پادشاه جدید تبریک گفتند و برای شادی کردند، اما همه ی پادشاه جوون پیش زیباتر از پری بود. او دختر رو به مادرش و درباریا معرفی کرد و مطمئن بود که همه ازش خوششون خواهد اومد. اما ناگهان سه خواهر سبز و سفید ظاهر شدهاند. اونا توضیح دادند که زیباتر از پری عضوی خانواده سلطنتیه و ملکه دو جوون رو سوار کالسکه خودش کرد و به پایتخت تخت کشورش برد. همه با خوشحالی به استقبال اونها اومدند و جشن عروسی فوری برگزار شد. و گذشته زمان نه از خوبی اونها کم کرد، نه از اشق و علاقه میون پادشاه رنگین کمون و ملکش زیباتر است. پریرو. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی tme نقط/مهران دوستی T نقط .me ME/MERAU نشانی وبلاگ ما M مهران دوستی